سلام و درود بر دوستان جان و یاران همراه با قسمت دیگری از قصه های شاهنامه در خدمت شما هستیم و پنجمین قسمت از داستان زحاک ماردوش رو با هم پی میگیریم این قسمت قصه کاغه آهنگره مردی که بر علیه ظلم زحاک قیام میکنه با هم میشنگ سال ها همین طور از پیام هم می و میرفتند و زهاک ستمگر شب و روز از ترس فریدون زندگی تل دشواری رو میگذروند گذروند. زهاک از حمله ناگهانی فریدون و تعبیر شدن خوابش هراس بسیاری داشت و هر زمان تصمیم تازه میگرفت برای اینکه خودش رو در امان نگه داره. یه روز از روزا زحاک سرداران سپاهش رو جمع کرد و به اونا گفت ای یاران و دوستان من همونطور که می دانید من دشمنی دارم که پنهان شده و روزی به سراغم خواهد اومد و منو به قتل خواهد رسوند اون هرچند جوانی جویای نام و یه خامه اما نباید هیچگاه فراموش کنیم که دشمن دشمنه و نباید اونو دست کم گرفت به نظر من این تعداد سپاهیان و لشکریان که داریم کافی نیست و باید افراد بیشتری رو به خدمت بگیریم حالا به شما دستور میدم که روی ای بنویسید که زحاک پادشاهی عادل و مهربان است و مردم همه از او راضی هستند و هیچ آزاری به کسی نرسانده است بعد این ورقه را به مردم بدهید تا پای آن نوشته را امضا کنند. هر کس این کار را انجام داد او دوست ماست و از جزو سپاه من محسوب می شود و هر کس که از این کار سرباز زد اونو به قتل برسونید چرا که دشمن ماست. روز بعد دستور زحاک اجرا شد و سربازها با ورقی در دست به سراغ مردم بیچاره می رفتند و مردم نیز از پیر و جوون به خاطر ترس از ظلم و ستم زحاک پای ورقه رو امضا می کردند روزها همینطور می گذشت و هر روز به تعداد امضا کننده ها اضافه می شد تا اینکه یک روز زحاک که دیگه حالا خیالش آسوده شده بود روی تخت نشسته بود که صداهایی به گوشش رسید نگهباناش و فرستاد تا از موضوع با خبر بشن لحظه ای نگذشت که یکی از سربازان نفس نفس زنون به پیش زحاک اومد و پس از تعظیم گفت سرورم سر و صداها متعلق به مرد آهنگریه به نام کاوه او میخواد شما رو ببینه او خیلی هم عصبانی و خشمگینه زهای که ترس برپاشدن شورش تو دلش بود به کاوه اجازه ورود داد کاوه پا به قصر گذاشت و با چهره ای هم کشیده و عصبانی روبروی زهای کیست داد از او پرسیده مرد نامد چیست و به چه منظوری به اینجا آمده ای کاوه سربلند کرد و نگاهی تحقیر آمیز به زهای انداخت و گفت من یا آهنگرم و برای دادخواهی خواهی به نزد تو اومدم تو با ظلم و ستم حد خودت مردم این سرزمین رو بیچاره کردی لحظه ای به خودت نگاه کن هر روز چند جوان قربانی مارهای تو میشن و چند خونواده باید به عذاب نشینند تا تو با آرامش به خوشگذرونی ها دادامه بدی حالا مامورای تو سربازای ظالم تو تنها پسر من رو هم گرفتار کردن من تا اونو از اینجا سالم بیرون نرورم آروم نمیشینم زهاک از اقتدار و قدرت و شهرت کاوه در بین مردم نگران شده بود و میترسید بلافاصله فاصله دستور آزادی تنها فرزند کاوه رو داد تا به خیال خودش جلوی یک شورش عظیم رو بگیره کاوه پس از اینکه پسرش رو آزاد کردن و به نزدش آوردند به قصد بیرون رفتن از قصر حرکت کرد که زحاک به اون دستور داد تا پای ورقه ای که درون از عدالت و مهربانی زحاک نوشته شده بود رو امضا کنه کاوه که مردی دانا بود اون ورقه خوند، خوند پوزخندی زد و در برابر چشمای متعجب زحاک و درباریای بیارزشش ورقه رو پاره پاره کرد و از قصر بیرون رفت همین که کاوه از قصر بیرون اومد مردمی که تا پشت درهای قصر بزرگ زهاک به دنبال اون اومده بودند به شجاعت شافرین گفتند و بشادی پرداختند کاوه در میان اون شور و اشتیاق مردم رنج دیده و ستم کشیده تکی از لباس چرمی خودش رو که همه آهنگرا به صورت یک پیشپند جلوی کمرشون میبندند رو باز کرد و سر نیزه اونو گره زد و اون رو به سوی آسمون بلند کرد و فریاد زد ای هموطنهای دلاور من از این پس ما در مقابل ظلم و ستم در کنار هم نبرد می کنیم و این تکه چرم آهنگری نماد مبارزه ما خواهد بود من شنیدم که در کوه دماوند جوانی به نام فریدون زندگی می کنه. پدر اون توسط سربازان این زحاک ستمگر کشته شده و اون در صدد انتقام گرفتن از زحاکه فریدون جوون قدرتمند و بینظیریه اگر همگی به او بپیوندیم به, به یاری خداوند بزرگ میتونیم زحاک رو نابود کنیم به این ترتیب مردمی که از ظلم و ستم زحاک جونشون به لبشون رسیده بود گرد هم جمع شدن و به صورت سپاهی عظیم دریایی از انسان به سوی کوه دماوند به راه افتادند پس از روزها راه پیمایی وقتی که مردم به دماوند کوه رسیدند فریدون با دیدن اونها متعجب شد و برای یک لحظه فکر کرد که سربازای زهاک برای دستگیری او اومدن اما وقتی جمعیت نزدیک و نزدیکتر شد و صدای مردم عادی رو شنید با خیالی راحت به پیش اونها رفت و گفت ای برادران من از کجا آمدید و به کجا می روید؟ کاوه که پیشا جمعیت پیش جمعیتی بود گفته این مرد جوان ما ادهی از مردم رنج کشیده ایم که از دست ظلم و ستم زهاک به تنگ آمدیم و به دنبال فریدون میگردیم تا به همراهی اون به این خاری و خفت و ظلم پایان بدیم با شنیدن این سخن فریدون لبخندی به لباش نشست و اونها رو به سوی معبد برد تا خستگی از تن بدر کنند و قازو بخورند و جرعه ای آب بنوشند پس از یک پذیرایی مختصر و رفع خستگی مسافرین فریدون پیش اونها رفت و گفت من همون کسی هستم که شما دنبالش می‌گردین اما باید بدونید که برای از بین بردن این ستمگر این مقدار سپاه ناجیز کافی نیست من با روحانی معبد مشورت کردم و نظر اون اینه که ما باید افراد قدرتمند و ماهر رو از سراسر ایران زمین با خودمون همراه کنیم و با نیروی کافی به جنگ با این احریمنهیله گر بریم بنابراین از این لحظه به بعد تلاش ما برای نابودی زه آغاز میشه و این تکه چرم شما که روی نیزه است صنبل مبارزه شجاعانه ما خواهد بود بله دوستان من، حتما چنیدید درفش کاویان، نماد مبارزه و مقاومت ایرانیان در طول قرون اثار در مقابله همه ی ستمگران از تکه چرم پیشبند آهنگری کاوه آهنگر ساخته شد و این اولین پرچم ایران زمین بود تا برنامه دیگر و ادامه این داستان و سرنوشت زحاک همه شما رو به خداوند مهربان می و برای همه شما شبها و روزهای شاد تو با بهروزی و شادکامی و سربلندی آرزو میکنم روز روزگارتون کام